یه مسئله و موضوع خیلی جالب و عالی در روی هیپنوتیسم این هست که ابزاری بسیار کارآمد با تعریفی که تا الان قطعا یاد گرفتید با گوش دادن فایل های صوتی قبل ابزاری بسیار کارآمد و همزمان غیر قابل شناسایی یعنی اینکه شما با ماهر شدن در هیپنوتیزم و در استفاده از تکنیک‌های اون که در این دوره یاد می‌گیرید دارید ابزار رو به دست میارید که در این حال که توی ارتباطاتتون به صورت روزمره یا به صورت ویژه مخصوصه استفاده خاص توی بخش مختلف زندگیتون شما همزمان میتونید از این بسیار استفاده کنید تنوع زیادی داره کارایش برای شما اما موضوع مهمتر اینه که اصلا قابل شناسایی نیست یعنی اینکه، هیچ کس نمیتونه بگه آهان ببین این مسئله الان این تیکر و ارتباطش بود چون که اصولا هیبنوتیزم هنر ارتباط قویه اینجوری باشه باید هر کسی که ارتباط خوبی با دیگران داره رو بگیم این داره دیگرانو هیبنوتیزمی میکنه که درست هست اما بهشک میخوام اینو به شما بگم که خیلی از چیزهای مصنوعی که شاید از استادای دیگه از جاهای دیگه دارید یاد میگیرید و حتی خیلی از شیوه های کسل کننده هیپنوتیزم مثل هیپنوتیزمی که از قدیم احتمالاً دیدید توی فیلم ها که نمیدونم به این ساعت نگاه کن تو الان خوابت میبره بدنت داره هر ثانیه ریلکس و راحت میشه و فلان و اینها اینا مسخره چون که قابل شناسایی هن. هر کسی متوجه میشه که این داره سعی میکنه یه جوری عجیب غریب ارتباط برقرار کنه اما نوعی از هیبنوتیزم که اتفاقا خیلی محبوب به من هست میشه اسمش رو کانورسیشنال هیبنوسس گذاشت هیبنوتیزم گفتاریه که تو این دوره هم تو این کلاس هم در خیلی صحبت خواهیم کرد خیلی نکته خواهیم گفت و مزیت اینو از هیبنوتیزم اینه که شما حین استفادهش اصلا میتونید جوری رفتار کنید و جوری اونها رو اجرا کنید یعنی این تکنیک ها جوری هستن که ذاتا اصلا غیر قابل شناسایی و در نتیجه شما از ابزاری استفاده می کنید و کارآمد بودنش رو هم دریافت می کنید اما کسی متوجه نمیشه و این در واقع خبر خوبی هست که به شما اعلام می کنه و سیبنوتیزم هر جایی میشه استفاده کرد